بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله و علیه و سلم درس امروز ما شما یک درس مقایسوی است که درباره توحید و شرک یک مقایسه میکنیم بین از دو چیز باز بعد درسی مفصلن میشه که هر فصل سرش صحبت بکنیم خب همیشه وقتی که گفت میزنیم از توحید متوجه باشین که در مقابل توحید شرک قرار داره پس یک طرف قضیه توحید است و یک طرف دیگه شم شرک است اینال توحید چی را میگن و شرک چی را میگن اینال بایم سر توحید خود توحید عقیده داشتن یا باور داشتن به است که خداوند متعال جلد جلده زاد یگانه است. ذات یگانه است اینال در چی یگانه است مثلا اول در ذات یک در ذات دو در صفات سه در عبادت چهار در استعانت پنج در نزدیک بودن نزیگ بودن به مخلوقاتش شش در قانون هفت در افعال هشت در نام ها وقت ما در باری توحید صحبت میکنیم خداوند متعال جل جل جل یگانه هست در ذات خود در صفات خود، در عبادت خود، در استعانت، در نزدیک بودن به مخلوقات خود، در قانون خود، در افعال خود و در نامهای خود. در مقابل ازی وقتی که ما می میگیم شرک چیست شرک اینه یک قسم تقسیم میشه. یک نفر ما شرک میشه در ذات، شرک میاره در صفات، شرک میاره در عبادت، شرک میاره در استعانت، شرک میاره در نزدیک بودن، دور بودن دوربودن خداوند از مخلوقات شرک میره در قانون خداوند شرک میره در افعال خداوند شرک میره در نامهای خداوند پس انسان مسلمان موحد چی میکنه انسان مسلمان موحد کوشش میکنه که یک تا پرست باشه در این 8 بخش خب انال موممک وقتی که درس مقایسه‌ای رو میخونیم یک کسی پرسان میکنه میگه این رو ما چه قسم میتونیم مقایسه بکنیم بین کیو کی مقایسه بکنیم بینه کدام مردم و کدام مردم مخایصه بکنیم ما به وقتی که درس مخایصه بی میخوانیم ما دریای کابل نمیتونیم از دریای کابل سرچشمه را دبارش تصمیم بگیریم که امی آب دریای کابل کس از که از سرچشمه هایی که به کلشی مردار و گنده هست نخیر سرچشمش سرچشمهش پاک است ولی وقتی که در دریای کابل رسیدن اینجا که ما سهل میکنیم که آب آلوده هست قابل نوشیدن نیست مشکل در سرچشمه نیست مشکل در این گندگی است که وقتی که درای آب اومده ایره خراب کردن پس بخاطر خاطر که ما بفهمیم که اینمی آب در اصل چی قسم است درای چی صفات است باید به با کجایش بریم؟ به سرچشمهش بریم پس اینال عقیده توحید که برای ما آورده اولین کسی که توحید برای ما تشریع کرد و توضیع کرد و قرآن از زیر مشان بالای نازل شد او کی بود؟ حضرت محمد صلی الله علیه و اینال ما می آیمک در بخش توحید دو قسم مردم بودن موحیدین موحیدین این موحیدین کی بودن؟ موحیدین اول خود رسول الله صلی الله علیه و رسول رسول الله الله بعضی کسا برادرهای عزیز فکرتان باشه که وقتی که نام پیغمبر را نوشته میکنه نوشته میکنه سوات یا نام خدا را نوشته میکنه جیم یک نوی بعدبی هست و خدا و پیغمبر وقتی که تو نام مخته نوشته, نوشته میکنه نوشته میکنه که عبدالله ولد محمد خا محمد رحیم شما میگین عبدالله ولد عبدالرحمن، کدام وقت شده که نشکره بشه عبدالله ولد عین؟ اگر من میگام، پدر پدرت میگه چرا بچم به ادبی کردی؟ نام خودت هم کامل نوشته کردی؟ نام مادرش چی کردی؟ از این خاطر انسان کوشش بکنه که وقتی که جل جلاله جل اونو شما میگرا، کامل نوشته بگن. صلی الله علیه و سلام نوشتم میکنه؟ باید صلی الله علیه و سلام نوشتم خب در موحدین که بودن اول رسول الله صلی اللہ علیه و سلم بود دوم کی بود دوم آل بیت پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم بودن آل بیت رسول الله صلی اللہ علیه و سلم سل اللہ علیه و سلم سه که موحد بودن در زمار پیغمبر صلی اللہ کرام رضوان الله علیه مجمعین ردوان الله علیهم اجمعین این سه مردم اینا ممثل کی بودن؟ موحدین موحد چی مانه؟ یک تا پرست موحدین یعنی یک تا پرستان در اصل نبوت اینی مردم ها خود رسول الله سلام آل بیت رسول الله سلام و صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین اینا موحدین تشکیل میدنن که انسان‌های موحد و یکتا پرست بودن در مقابل از اینا این طرف جگه که بود, بود مشرکین بودن مشرکین که ها بودن مشرکین مشرکین کی بودن مشرکین در جمله مشرکین هم اول مشرکین قرائش دوم کی بودن نصارا ایسای یا مسیحی ها آلو که مثلا امروز کریستیان میگن سوم تایفی که بودن یهود یهود که مشرک شده بودن چارم طایفی که بجای بودن مثلا مشرکین هبشه بناهن در عصر نبوت اینی مشرکین بود که بر ما روایت ها آمدن در باری از اینا صحبت شدن و هر کدام از اینا نظر خاص خدا داشتن بناهن یک طرف موحدین قرار داشت طرف دیگه اش مشرکین قرار داشت ان ما که امروز دست می در عقیده سرچشمه عقیده از همینجا شروع شده توحید رسول الله صلی الله علیه و salam قرآن عظیم شان آورده اولین موحدی که عقیده توحید و تشریع میکرد و توزیع میکرد خود پیغمبر صلی الله علیه و salam بود وقتی که آمد دومین کسی که به اقیده توحید باور پیدا کرد و عقیده کرد بی بی خدیجه سلام الله علیها بود بعد از او قسم حضرت علی کرمالله و حضرت توبکر صدیق اینا بالاخره آمدن و آیسه آیسه تعداد مسلمان ها زیاد شد ایناله. این ای موحدین چی میگفتن در ذات خداوند متعال جل جل و هو مشرکین در ذات الله جل جل, جل چی میگفتن موحدین چی میگفتن موحیدین میگفتن که وقت ما در باری ذات الله جل جل صحبت میکنیم آیت خرآن نازل شده بود که لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوان احد الله جل جلاله از داشتن فرزند دختر باشه یا پسر از داشتن والدین مادر و پدر از داشتن همسر و شریک و همتا پاک و منزه هست پس موحدین چی میگفتن موحدین میگفتن که الله جل جلاله نیازی به پدر نداره نیازی به مادر نداره ضرورتی به دختر نداره ضرورتی به پسر نداره ضرورتی به همسر نداره ضرورت به شریک و هم مثل نداره و هیچکس هم نمیتونه که مانند خداوند باشه چرا نداره میگفتن به خاطر ازیکی که او خالق است او خالق کننده است این ضرورت به پسر و دختر و مادر و پدر و همسر و شریک هم تا یکی ضرورت داره به چیزا انسانی که مخلوق است، عاجز است، محتاج است. ما وقتی که انسان هستم، مخلوق هستم، عاجز هستم، پیش خود فکر می‌کنم که والا اگر من اولاد داشته باشم، اگر من مثلا همسر نداشته باشم، زندگیم نورمال پیش نمیره پس من باید به خاطر زندگی نورمال خود ازدواج بکنم. مگر اولاد نداشته باشم، وقتی که فیش شدم پیر شدم، مثلا باید پسر داشته باشم، دختر داشته باشم، امرای کمک بکنن. اگر ما والدین نمیداشتم من نمی‌تونستم نمی درس بخورم، نمیتونستم مکتب برم، نمیتونستم پوانتون برم، نمیتونستم زندگی نرمال داشته باشم. پس این نیازمندی ها نیازمندی‌های ما است که من مخلوق هستم و بیچاره هستم و عاجز هستم. اما ذات خداوند متعال جل جلاله، جل او ذات کبریاست. به شان از این هیچیزایی که ما مخلوقات به خاطر عاجزی خود تقاضا داریم، عاجزی در شان خداوند متعال جل جلاله جل ذیب نمیتد. باس ذات کبریا هست، او از این چیزا پاک است، باوی چیزها نیاز نداره. و من مخلوق هستم، عاجز هستم، بیچاره هستم، ضرورت دارم با مادر، با ضرورت دارم به و پدر، ضرورت دارم با دختر، ضرورت دارم با پسر، ضرورت دارم به همسر، ضرورت همسر، ضرورت دارم به کسی که شریک و همتای من باشه. و کسی هست که مثلا مخالف من هست، کسایی هست که ضد من هست. پس ما سیز، اوکی. اما خدای عزوجل، ذات کبریاس هیچ کس نمیتونه با الله جل جلاله خدا ضد قرار بده و نمیتونم اگر اگر زد داری خلاص کی میتونه بگه من زد دارم که تو خداوند من نمیخوام که نمی آفت از آفتاب استفاده بکنم بگم من زد دارم که الله جل جلاله نمیخوام دیگه زمین زندگی بکنم من زد دارم نمیخوام که مثلا غذا بخورم الله گفته که تو به خاطر زندگیت باید نان بخوری آب بنوشی بگه هیچ به خداوند استفاده نمیکنم هیچ کس نمیتونه مجبور است در روز اگر آب ننوشی در روز سیومی نفسش میبرای برای تسلیم میشه بناهن موحلین عقیده داشتن که الله جلاله نیازی به یه چیزا نداره خب در مقابل مشرکین چی میگفتن؟ مشرکین قریش چی میگفتن؟ مشرکین قریش میگفتن که ملائکه ها دخترای خداوند است مشرکین قریش چی میگفتن؟ ملائکه ها دخترای خداوند است شرک آردن در ذات خداوند مدرد مشرکین نصار چی میگفتن مسیح ها چی میگفتن مثل که امروز هم میگن در کتابایشون هم نوشته است و امید تبلیغ هم میگن میگن که عیسی پسر خداست عیسی چی هستن پسر خداست پس عیسی کی شد میگه عیسی هم خدا شد باز عیسی را میگن که پدر داره باز عیسی را میگن مادر داره پس اینجا به خداوند پدر مادر پسر ای که میگفتن و امروز هم میگن بس اینا مشرک شدن چون به ذات الله جلال جلاله جلاله حجی کردن شرک آوردن مسیحی های مشرکین یهود چی میگفتن؟ میگفتن آزایر بچه خداست توحید در ذات چیست؟ توحید در ذاتی است که باز من میگم این حال پرسان میکنم توحید در ذات چیست؟ توحید در ذات هست که ما عقیده داشته باشیم که الله جلاله حجی نیازی به پدر نیازی به مادر نیازی به دختر نیازی به پسر نیازی به همسر و نیازی به شریک و همتا نداره شخصی دو باید اصاب بکنی و بر برعکس از اینا به خداوند نسبت میدادن که بچه داره دختر داره پدر داره مادر داره فلانی داره فلانی داره متاجه شده یعنی توحید در ذات خدایش مشریکین دست خدا خدای جلی جلی ها چه ملایقه ویچی داده خدای جلی ج مشکین ده نصارات سوایل مشکین ده نصرات دست وی که از ایساله ایسالم که داده خدا جلی حضایده آو مشکین ده یهود سوایل مشکین ده یهود دست وی که حضاید که داده آقا خدا جلی حضایده مانا نه شما موافقین چی میگفتن موافقین موافقین میگفتند که قرآن جو در ذات خود گاز شریک مثل نداره یعنی آب باورس زردار نداره یعنی با دختر پسر ضرورت نداره و با والدین ضرورت نداره یعنی والدین نداره و همچنان اینان مشرکین قراش که بودند می که تمام ملایکه هاک هست یعنی دخترای خدا است. و و همچنان یسایی هاک بودند می افتنین نصارا که عزتی سلام پسر خدا من جاست کنان خود عزتی سالسلام خدا من جاست فرق بین یک موحد و مشک در زمان پیغمبر سلام در زاد چی بود؟ که الله جللا جلاله او از پدر مادر پسر خانم و در ذات شریک نداره و یعنی که امرکان که سوره مازور شده بود و داشتیم کدام سوره مازور شده بود سوره خلاص چه قسم بود عودوی الله من الشیطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد بمیم... خب یه رفیق میگم و مشکل کیش مشکل داشتن مشکین قریش میگفتن که توبه عیاضان بالله که ملائکه دختران الله جل جلاله هستند تو که مشکینه صرا چی میگفتن مشکینه صرا میگفتن که عیسی علیه السلام پسر خداست و تو مشکینه یهود چی میگفتن مشکین یهود میگفتن که وزیر عزر علی السلام دختر بچه خداست عزر بچه خداست فهمید نه ان شاء ایران توحید در ذاتی است که خداوند متعال جل جلاله جل از داشتن پسر بگوین از داشتن چی؟ دیگه؟ دختر؟ سر. امسر؟ سر. پدر؟ مادر؟ مادر چیست پاک و منظه هست نیازی نداره ضرورتی ندارن. ا... اینال مشرکین باز هر کدام شد اونا باز پسان اگر در ذات شرک نورده بودن باز بازی ها از صفات شرک میوردن در عبادت شرک میوردن یعنی مثلا گفت رزی نشد که اگر یک نفر امیگا پار گفت موحد شد وقتی که انسان تو میخوای موحد چی باید در صفات زاد هم در صفات در باید در کل از این الان میام در بخش دومش در صفات خب توحید در صفات چی است بسیار ساده هست گوش بدین ما ساده خاطر از این براتون که این موضوعات بسیار مهم است این باید در فیاد یاد بگیری باز که از روی کتاب می و درس مفصل و مثلا فصل با درس می دیم باز وقتی که این قسم بفهمی باز خوبتر میفهمی اینالان مثلا توحید در صفات دادو دو جمله کوچک کوچک چک خلاصه خلاصہ میکنیم توحید در صفات چی است توحید در صفات است که یک مسلمان عقیده داشته باشه مثل که رسول الله صلی الله علیه و آله و آل سایه رسول الله صلی و صحابه کرام عقیده داشتن که صفات الله جل جلاله جل مثل صفات مخلوق نیست صفات الله جل جلاله مثل صفات مخلوق نیست و صفات مخلوق مثل صفات الله جل جلاله شده نمیتونه باص ما چی باید بکنیم وقتی که میگیم که صفات الله مثل صفات مخلوق نیست یعنی صفات خالق مثل صفات مخلوق نیست و صفات مخلوق مثل صفات خالق شدن میتونه ما مثلا مخلوق هستیم رنگ و رنگ صفات داریم صفات خوب هم داریم صفات خراب هم داریم بس از این خاطر خداوند متعال در قرآن از میشان یک آیه شریف است که چی میگه لیس کَمِثْلِهِ شَیء در صفات باید ما کجا ماयत تدبیر بکنیم؟ لیسا کمثلہ شیء یعنی مثل خداوند مثل خداوند, خداوند هیچیز نیست. هیچیز نیست. هیچیز نیست یعنی هر صفاتی که من دارم نباید این صفات من نسبت بدتون به الله جل جلاله و هر صفاتی که الله جل جلاله داره نباید دور من فکر کنم مثل خود چرا به خاطر که صفات من صفات مخلوق است اما صفات الله جل جلو صفات خالق است پس کسایی که خود با مشرکین چی مشکل دارن؟ مشکل مشرکین ای است که خدا با خداوند تشبیه میکنه یا خداوند با خود تشبیه میکنه انسان های موحد در زمان رسول الله صلی علیه و وسلم چی میگفتن؟ و اما مطابق عقیده از اون کل مسلمان های جهان همی عقیده دارن که صفات مخلوق مثل صفات خالق نیست مثلا من مخلوق هستم اگر من علم دارم علمی من مثل علم خداون شده نمیتونه. علمی من به وسایل داره. مگه چشمایم نمیبود بود نمیتانستم برایم من بچه شم ضرورت دارم من اگر میکروسکوپ نباشم میکروب دیده میتونم پس من مخلوق هستم ما اگر میخوام درباره سیاره ها تحقیق بکنم تا وقتی که تلسکوپ نباشه که جهان رو کلش اون ماهتاب اون سیاره ها اون نظام شمسی اون نظام فلکی وقتی که من چیزها چیزا رو تلسکوپ نداشته باشم نمی تا ما اگر میخوام اینجینیر شوم مجبور هستم 5 سال باید 12 سال مکتب بخونم 5 سالم باید فاکولتی مهندسی بخوانم ما می میخوایم خوب اینجینیر قوی که 18 منزله و مثلا 200 منزله جور بکنم با ماستری و دکترا هم در در در در بگیرم اناله این صفات که صفات من چهار مخلوق هست صفات من مخلوق است علم من ناقص است مثلا اگر معالم اسم علم ناقص هست. من ناقص است ما در خود میفهمم اما در دیگرش نمیفهمم یک نفر پروفایسور است در اینجینری لکن اون نفر در ژورنالیزمی چیز نمیفهمه یک نفر پههاند است در طب اما وقتی که برم در انجینری اینجج هیچ درس زده نمیتونه بس علم انسان که است ناقص است چرا که دم یک رشته‌ای که خاص است مثلا ما اگر در باری زبان ها فکر میکنیم میگیم اوه ولا در فارسی میگه که نام چیست در پشتو میگه که نوم څه ایران فهمیدم در میگه نام که در عربی میگه مسمو میگه در انگلیسی میگه چینایی چی میگه نمیفهم آلمانی چی میگه فام. فرانسوی چی میگه نمیفهم پس علم ما چی شد ناقص. ناقص شد مثلا مالکیت است درست است من مالک استم خداوندان مالک است لیکن وقتی که ما عالم بودم علم من ناقص بود لیکن علم خداوند کامل است علم ما در ظاهر است. وقتی ظاهران تره میبینیم بسیار انسان خوب ان شاء الله تعالی. لکن باطن تره من عیفم. از قلب تو من خبر ندارم. اما علم ما میشه مقایسه با علم خداون شده. خداوند از قلبت با خبر است. مجرده که در دلت یک سخن میگرده الله تعالی میفهمه که چیست. به او عالم غیب است ما عالم غیب چه دارم میتونم او عالم است که ضرورت به وسایل نداره من نیازمند وسایل هستم. او عالم هست که به هیچ چیز نیاز نداره. همه چیز هم میدانه همه چیز هم میفهمه هر کسی به هر زبان و به هر لحجه از این خاطر ما میگم که علم خداوند کامل است علم ناقص است مشرکین چی میگن؟ مشرکین برعکس قیاس میکنه خدا با الله جلاله جلاله بار سال می شما یک اون دو بود، می سنگ. و گاترسنگ از ما سیندجی پر سوال مگات میفت آه خداوند آهای است مگهی تعمیر جور میکنم صحیح کین من تعمیر جور میکنم این تعمیر جور که جور کرد؟ ما انجینیر شدم شدم ما س میفتن یس yes. تو انجینیر هستی مفرق های خداون که دنیا را کل جور کرده او هم انجینیر است ما که صفات خداوندا نمیفهمیدن فکر میکنم میفتن آها پس بازو پرسار مگات خو که خداون انجینیر است انجینیر چی مهندس ساختمانی، سینجینیر برق است، چطور است این؟ اینا او مادر پیش ما پرسان که گفتن استاد این مردکه این تو میگه ما اول خودت کلمی لا اله الا الله را سر بخور چون تو صفت اینجینری را صفت انجینیر بودن صفت کی است صفت یک مخلوق بیچاره که 12 سال و بیشتر سختی مکتب خونده خدا حمچی قدر نقل زده باز بعد از اونم در کنکور بچی دل لرزان امکان داده باز در کرد انجینیر دل اسم خریده چقدر خیزاندخته او ما هم شدم باز اینمی نفر آمده اومده در پانزه انجینیر درس خوانده ها باز شوهاق خامخو بوده روزی که دست داشت صبحی 8 بجت دیدید دیدید استاد نمیماند از ها بلاخره 5 سال درس خوانده زامد کشه این نفر چی شده؟ انجینیر شده پس تو چطور میتونی که استفات آجزانه یک مخلوق به الله جلال جایه نسبت بدی؟ انجینیر که نفس خودم بکشن چیز از اج ساخته میتونه. مجبور است سنگ پیدا بکنه وقتی که میگه تعمیر بساز میگه تو برو یک دست موتور سنگ در. یک چار ست خشت کار است اقضا لاران کار است اقضا فلانی کار است اقضا سیخ گول کار است اقضا مزدور کار است بازباد از دو سال میزنم تا که بر تو یک چهار منزله جور بکنه اما الله جل جالهو وقتی که می سازه اذا اراد شیعن ان یقول له کن فیكون. فیكون پس وقتی که الله جل جلو یک چیز اراده کرد مجرد که براش گفت که شو میشه پس از این خاطر او کسایی که فیلسوف هستن و فیلسوف نما هستند و بسیاری وقتها علم خدا با علم خداوند مقایسه میکنند بر ازو سوال پیدا میشه علم انسان زاده او نمو بیچارگی، ناتوانی ضرورت به وسایل، ضرورت به امکانات علم ما زادی کلیم چیز چیزاست اگر همین چیزا نباشه ما بیسواد هستیم اگر من درس نخوانم، مکتب نرم مدرسه نرم پانتون نخوانم، مطالعه نکنم من یک بیسواد انسان هستم اما ما میترم علم خود با علم الله جل جلاله قصی ابدان ما عاجز بیچاره علم من مطابق بیچارهگی و ناتوانی خودم است در یک رشته خاص حتی در خود هم بسیار ضعیف هستم حتی خود هم سر ضعیف هستم تا وقتی که مطالعه نکنم امور خودم صحیح نمی‌فهمم پس به بیچاره عاجزی که حتی چیز خودم نمی‌فهمم بسیاری وقت‌ها اسمش ما سوال میشه عیرانم سوال چطور است خیر است میری مطالعه میکنیم میخاریم باز, باز باز جواب از سوال میگم. پس من انسان عاجز بیچاره چطور میتونم با ذات که ذات ذات کبریا هست و به هیچ وسیله و به هیچ چیز نیازی نداره به خدا پیازبگرم از این خاطر موحدین میگه که صفات الله جل جلاله صفات عالی است که بذات الله جلاله و صفات ما مخلوق صفات مخلوقی است که آجزانه و مطابق به توان بشری ماست پس صفات خالق مشابه با صفات مخلوق نیست و صفات مخلوق مشابه با صفات الله جلجاله شده نمیتونه سهی شد نه؟ نه این سر مشریکین که مشریکین چی میگفتن؟ اون دوها رسل کنین اون دوها میگن که صفات خالق با صفات مخلوق تشبیه کنن چه قسم تشبیه بگن اول شما سر که اون دوها را گیده باشین در قتیای چای بر بوتهای خود یک دسینج جور که یک دسی دیگه 6 دونه دیس ها ایشا 6 دسی جور که اون دو جان میخواهم مثلا خدا هم که است مثل موارثنه و مثل خود را تشبیه کنند مثلا من که از چای میخورم و او اون واسه خود چای میخوره که از دیس سر ما آفرینی آفرین نمی تکد دسی دیگه خود بینی خدا پاک میکنه بوت باز کدیس دیست دیگه خود مثلا آسمان رو نگاه میکنه کدیس دیگه خود زمین میگیره که اینه اینی قسم تشبیهات به مخلوق میتنه چرا؟ به خاطر ازو که فکر میکنن که خالق هم مثل چی ورست؟ مثل مخلوق بارست یک مشکل شد مشروع که این احیانا مثلا صفات خداوند متعال جال جالون مثلا مذکر و معنیس بودن صفت کی هست؟ صفت مخلوق هست این انسان ها هست که مذکر دار بسیاری از مشریکین صفات مذکر و معنس ها به کی نسبت میتن؟ به الله جلال جالهو به خداوند چی میگفتن؟ مثلا اون دوها معبودای مذکر دارن معبودای معنس دارن معبودای مذکرشان مثل چی بارست؟ مثلا این رام مذکر بود باز میگه سیتا معنس بود باز معبودای دوگه که مثلا چیز دارن؟ رنگ سیاه و سفید دارن باز میگه کالیماک این معبود سیاس. از این خاطر اتا مسلمانایی که به مشرکین و بگپای از این هم شدن اله میگن اله میگن اله ها یعنی معبود چی؟ مؤنس و از این کسا نام دخترای خدا اله میمانن و یک کفر و شرک است. از این خاطر باید توبه کرده و فورا این نام اثر اولاد خود حس کنن نام دیگه ای بانن که نام مسلمانی باشه چون که الله جل جلاله رو ما نمیتونیم ما مسلمانا مطابق عقیده خود میگیم که مزکر و مؤنث بودن یا روح و جسد کست مربوط به کی میشه من مخلوق هستم روح دارم روح مخلوق در وجودم هست در وجود من است ما مخلوق هستم جسد دارم اما ما نمیتونیم به الله جل و نسبت روح و جسد رو بدهیم بگیم که خداوند روح است یا خداوند جسد است اگر کس ایگه پا را میزنه از این خاطر ایگاپا چی میشه ایواز از اینکه هدایت چی میشه گمراه میشه بعضی کسا میخوان که الله جل مثلا این امیال مشرکین ایساوی ها چی عادت داشتن ایساوی ها وقت گمراه شدن و کافر شدن و مشرک شدن و بیدین شدن که به ایواز عقیده توحید مشکل شانده چی بود عقیده که یک تا پرست باشن خدا یگانه را عبادت بکنن یک کسی نام پولس یا شاول ترتوسی یا آمد ای فلسفه را داخل کرد در عقیده گفت ما شما موحد هستیم لاکن خدا پدر داره خدا پسر داره روح القدس. است خدای پدر خدای پسر، روح القدس. اره از یا رو جمع میکنه، میشه خدای یگانهوان پلا وان یک پوان ا 1 هیچ کسی را قبول نمیکنه برای یک گ که خوردا وقتی که بویه که بچم، یک دونه قلم مبرت میخرم یک دو قلم و مادرت برای طفا میده یک دو قلم هم کاکید برای طفه میده پس عرضسیه قمت یا قلم میشه میگی چی میگی؟ هیچ دیوگی؟ این چی دیوانه گیس یک جمعی یک جمعی یک و یک ایره من اما پذیرفتنم میتونم ای چون اینا در یک دیگه چی رو داخل کردن فلسفه رو داخل کردن گفتم نه نه نه وقتی که تو مسیحی هستی میخوای یک دیگه مسیحی هات اما فهمی. You have to believe تو باید باور داشته باشی. تو باید گاه نزن که ما کاشیشو پاپ که برایت گفتم که گاو سفید شیرش شیرستیا تو اگه بچشم تو میبینی که گاو سیاس شیرش سفید تو حق نداری که مخالف گپ ما گپ بزنین. وقتی که این قسم گپ بزنت چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ نصف دنیا سکولار شد. امیل غرب، اکثرشان چرا سکولار هستن؟ به خاطر عقیده را نمیفهمند. وقتی که میره میگم من عقل دارم، این دنیا دنیای عقل است. قرن بسیار قرن چی است؟ قرن هست قرن تکنولوژی است. تا وقتی که بر ما دلیل نتی و عقل ما را قبول نکنم من این گپ رو قبول نمیکنم. از این خاطر بسیاری وقتها این مردما چی میشن؟ سکولر میشن کافر میشن میگه دین ما کار نداری می چی قسم دین است خداوند میگه لقد كفر الذين قالو ان الله ثالث ثلاثه می کافر شدن کته گفتار که خداوند سومی سی است وا میگن یکیش یکیش یکیش بازی خداوند سیومی ازیاست از این تا یکیش کیه الله الله جلال جلاله جل. اینا گفتیا کافر شدن ازی خاطر اونا ولی اونا با چی میگه میگن یک جمع یک جمع یک مصاحبه چی میشن ما روی با ما خداوند یکتا را پرستش میکنیم از این خاطر گپ از یار را میفهمند متاسفانه بسیاری از های ما هم که متاثر به فلسفه شدند میخوان که فلس... خداون از طریق چی بفهمن؟ از طریق فلسفه بفهمن حق از طریق فلسفه بفهمند دستفوی 12 اگر شما کتابا را خوانده باشون داخل کردن که خداوند از عین ذات است و صفات خداوند غیر ذات است و عین ذات است و این است و چی دورست این, این فلسفی این نه استادش میفهمه نه شاگردش در حالی که نمیفهمی را اقیدت هم خراب میشه خراب میشه نمیشه سوال ایجاد میشه سوال خلق میشه فلسفه یک علم است. فلسفه چیست یک علم است. برش احترام داریم منطق یک علم است. برش احترام داریم یک علم است. برش احترام داریم لکن تو میخوای که از طریق فلسفه یا منطق یا علم کلام الله را بشناسی شناختا نمی الله از کدام تاریخ می‌شناسی؟ از عز قرآن عظیمشان. فلسفه و استاد دانوایی، ما الله اوسو پسندند. فلسفه ولدانوی فلسفه، فلسفه و اسلام فلسفه‌دا. اسلامی فلسفه ولدانوی شما خدای پاک نه پسندند. ما اوستای پاک تو پسندند بده اگر پدیمان لري الله یودے، الله ایت قرآن نه پسندند، طول مند لک چنگ چوینجینر یا استادان. کدا خبرو کنه؟ خبر توایش از الله پاک فیزانم سه چه په قرآن که لیکل سوی آمنا و سلمنا سهیده که الله پاک په قرآن که ویش الله احد الله سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل و کفوان احد زبا دی عقیده عقیده اوز غوام چه زی فلسفه وایم ویم دقا علم ده و در فلسفه داشاید اقا ده وی من از دیوه علم وی لیکن مشکل ده ده چه تغواردی چه خدای پاک و پیزنه دلائل فلسفی. و غیر فلسف داشتن لفاظفه نه فیلسوفی. ما میخوایم که ازی پرسان بکنیم که چی را خوش سعی سسنه پولو علومه که کمایلم خواهیگی. ریاضیات. ریاضیات. خب، پدر مسئله که کم مسئله دزدی خواهیگی. اینجینری. اینجینری. چیکی تو کجی طول وابردی؟ انال ساکرین. وقتی من میخوایم که درباره شیرخان معلومات داشته باشیم، عقل برم. من میگم که ما باید میخوایم صفاتی ازی از خودش بشنوم. چی صفات داری چی عادت داری چی چیزها داری کل نظیره میگریم در کتاب نوشتم میکنیم یا خودش نشته کرده تباری خود خودش نشته کرده اما ما می می من میخواییم نه من رو میخواییم از طریق فلسفه بشناسم میتونه میدونه شناخته من میگم ولی من چه سونو چهریه تو سال میکنم شاید تو از جهالباد باشی نشته میکنم شیرخان از جهالباد والا دبیر که میری کلام در دا سرت داری پیرانتنبار هم پشید تو معصول شرایط هستی سیز سیز من تصور میکنم بنام من فلسفه میگم سیز دهی فلسفه میگم در مسلکه من فکر میکنم که زیاد جورنالیزم خوش راشته باشیم اینال من که اینه میگه تصور میکنم من میگم آیا ای گپای من با صفات تو یکسان است بنام ان فیلسوف تصور میکنم فیرسوف چی میکنن؟ تصور, تصور میکنن سونه ارچی سل کرده تصور میکنه. ولی من این نفر رو میبینم تصور میکنم که یکی از صفت هایش ای باشه که ای زیاد استراحت بکنه ایچ کی ندل باشه گفته شما زیاد بزیار کی ندل باشه اینال وقت کرسان میبین تو کی ندل هستی؟ نه. نیست پس تصور ما چی شد؟ خلاش اینال وقتی که من میخوایم که صفات شیرخانا رو بفهمم باید از کی میره؟ از خودش. بس خودش بر ما توصیف بکنیم این حال وقتی که ما صفات یک مخلوق اگر تصور بکنیم غلط میکنیم آیا از ذات الله جل و حق داریم که از فلسفه خود گپ بزنیم و ای که قرآن بخونیم که خداوند متعال صفات خود چی گفته؟ گفته الرحمن الرحیم ذو الجلال گفته نگفته؟ السطار الوحاب الغفار بناهن ما صفات الله جل و جل از کجا میکنیم؟ از کتاب خداوند جاجو که قران عظیم و شأن است انال برای شناخت الله جل جلو از طریق فلسفه ایوازي که او راهنمایی شویم چی بشیم گم راه شیم به خاطر از اینکه ما صفات الله جل جلو جل را صفات الله جل توقیفی است چیزی که خداوند خود صفات کرده ما با غیر از اون کردن کرده نمیتونیم چشم خداوند برات خلق کرده برای چی که ببینی بله گوشه برای شنیدن آیا میتونی با گوشت ببینی نه طبعا نمیخویم با چشمم فقط شنا وینه میشه دیدن نشه آفرین حال ما و شما وقتی که علوم محسوس است در محسوسات باید از چی استفاده کنیم از حس خود در علوم تجربی از چی استفاده بکنیم از حس خود در علوم که معقوله در معقولات از چی استفاده کنیم در غیبیات که غیب است آیره میتونیم تحت تاثیر لابراتوار بریم نمیتونیم پس تو آیا لا تدرکه و وهو یدرک اینال وقتی که خداوند متعال موتوز ذات الله جل جلوه و صفات الله جل جلوه را مطابق عقل خود جور کردن نمیتانیم مجبور هستیم که صفات الله جل جلوه که غیب است از چی پیدا بکنیمش از کتاب غیبی قرآن عزیم و شان است که بر ما تشریح میکنه. اما ای که مثلا فیلسوفا گفت میزنن فیلسوف تحت تاثیر چی است فیلسوف یا حسگراه هست؟ یا عقل است سیست نی پس وقتی که او هر چیز رو که مطالعه میکنه یا توسط حس مطالعه میکنه یا توسط عقل مطالعه میکنه از این خاطر فیلسوف تا قسمت که عقلش کار میتر مثلا با حس خود دنیا رو میبینه سهیسته؟ با حس خود, خود دنیا رو می‌بینه، از این خاطر میگه که بله این درختی ای, درخت ای کوه کل از باید یک خالق داشته باشه میگن با عقل خود میگه که اول اینمی کلی چیزا دلیل هستن با وجود خداوند اما وقتی که میای در صفات خداوند مطال جل جلاله جل، و آ یک فیلسوف بر ما صفات الله جل جلاله جل را تعیین کردن میتونه از طریق فلسفه آیا تو میتونی ذات الله جل جلاله جل رو جل با عقل درک بکنی نه با عقل خود پس باید به با چی تسلیم شوی لیسا کَمِثْلِهِ <تصفيق> صفات خداوند متعال جل جلاله جل، جل را ما میگیم صفات خداوند متعال جل جلاله جل صفاتی است که بذات الله جل جلاله جل، مشابه با صفات ما نیست لیسا کَمِثْلِ خلاص یک فرمول است لیسا کَمِثْلِ هی هیچ چیزی مثل الله نیست بنا هر فیلسوفی که هر تصوری درباره الله میکنه غلط تصور میکنه یعنی هر فکری که ما بکنم که الله اینی قسم باشه و خاطر دیگه قسم قسم قسم چیزی که ما میبینیم که ما از خود میبینم پس خداوند تحت تاثیر حس من میره منا باید خداوند مطابق قسم هر که با تصور کردم برعکس از, از او الله جل جلوس. جل لیسا کَمِثْلِ مثلا من تو که تو را وقتی که من میبینم چهره برادر مرا داری مثل برادرم هستی. چون ما برادر خواهدی این رو تصور میکنم چهره مثل چهره برادرم. اما ما الله همه تو گفته نمیتونم. خاطر ازی که الله مثل مخلوقات نیست تا ما تشبیح بکنیم. در صفات الله که گفت میدونیم عدب را راعت بکنیم. عدد در مقابل صفات الله جل جلاله چی عدد در مقابل صفات الله جل جلاله این است که الله جل جلاله صفاتی داره که با ذات از او زیب میتر. و من مخلوق بچاره هستم صفاتی دارم که به من مخلوق شایسته هست پس من مخلوق هستم او خالق است. هیچ خالق با مخلوق قابل مقایسه و قابل تشبیه نیست. من هم میتونم صفات خدا رو با او تشبیه بکنم. و هر کسی که صفات الله جل جلاله را مشابه صفات خود فکر میکنه، ای با ای با ای که هدایت شده و میشه. ما صفات الله جل جلاله را از کجا میگیریم حضرت رسول کریم صلی الله علیه و آله و صحابه کرام مستقیما قرآن از ایشون میخوانند بسم الله الرحمن الرحیم یکی از صفات الله جل جلاله چی است رحمان است از دیگه صفات چی است رحیم است الحمدلله رب العالمین الله جل جلاله پروردگار تمام جهانیان است الرحمن الرحیم مالکی یومی دین مالک است. دیگه مالک شاید در دنیای چیز مالکیت داشته هیچ هیچکس در روز آخرت مالکیت ندارد. کل چیزهای هم داری زندگی خانه، کل جه دنیا من در روز قیامت مفلس و استاد هستی. مالک روز جزا کی هست؟ الله جللا جل جلوا هست. به این شکل یک انسان مسلمان خوانا میداد و هو الغفار آیات قرآن است مثلا میگه هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن این نام ها اسم ها و و صفات خداوند است میخوریم به صفات الله جل جلاله عقیده داریم مشرکین چه مشکل داشتن مشکل مشرکین این بود که در صفات الله جل جلاله چی میکردن مخلوقاته تشبیه میکردن صفات خوده با صفات الله جلال جلاله یکسان فکر میکدن مزکر و معنص امیاله بعضی مج... بعض مردم که متاثر و مشرکین شدن پرسان نمیکنن بسیاری وقتا کنون چرا در نام الله جلاله جلاله اگردک نیست؟ چرا نام های نیست؟ میگن نمیگن این به خاطر می میسواله میکنن؟ به خاطر ازید که به عقید مشرکین که میگه که اله اله ها. خدا مذاکر خدای مع است این فلما این دیر زیاد دیده ید های فلسویلخوانده از این خاطر مع ای سوالها رو میکنه دخر تو بر یک مسلمانش و سوال پیدا نمیشه و خاطر چی و خاطر اضزی اگر نام از جمیل است، نام از دگه جمیله هست و خاطر زی که تو تا اینسان هستن م چه قسم به فامکی دختر است سی بچه هست میگن جمیله جمیل جمیل میگ و جمیله و خاطراضی که دختر است مردم به فامکی دختر است از این خاطر وقتی که تو میکانانی که یک کسی یک مریض می نام دارم باز دکتر با از این معامله دیگه قسم میگه که با جمیل میکنه یار مگه میکن. او شو روز شما که یک مریض عالمه ای به نام جمیل است برای اون ادمای بیکار بره که من میره ماینه میکنم چون که ما دکتر هستم مجبور هستم دیگه دکتر زن نیست من مجبور هستم میره ماینه بکنم اما تو دکتر نیستی تو چی میکنی چه اما دست جمیل وقتی که ماینه میکنه دندانش دندانش میکشه خیر دو نفرم میصد باشه مگه خلاص یک مرد است پس ما 20 تا که در آخر جمیله چرا زیاد کردیم به خاطر از اینکه در انگام تعامل با جمیله و جمیل باید ما بفهمیم فرق بکنیم اما مشرکین کسی که عقیدش در توحید خداوند متعال جل, جل, جل و شرک پیدا کرده حالا میخواد که نام خداوند متعال جل جلاله جل رو هم در آخر یکیش رحمان باشد در آخر دیگه شیگدک زیاد کنه این خب گف یک مشرک است یک انسان است که الله جل جلاله جل رو در صفاتش نشناخته بنا مشرکین چی می‌کردند مشرکین چی عادت خراب داشتن مثلا مشرکین قریش میگفتن که در خداوند بعضی صفات رمی آوردن که او صفات صفات مخلوق است مثلا مخلوق مجسمه داره مخلوق تصویر داره عکس داره مشرکین قریش مجسمه های رمیستخدان این رو باز میفتن که مجسمه های خداوند است بس صفات جسمه جسم بر الله جلاله جاله نسبت دادن مشرکینه که نفرها بودن، وا چی بعضی از های خداوند. همین روز که بایبل کتاب مسیحیا رو بخوانی. در کتاب بایبل خود نوشته کردن که خداوند متعال جل جلاله، بنی اسرائیل وقتی که خلق کرد، دید که بنی اسرائیل بسیار جنایت کردن، از خلق کردن بنی اسرائیل پشیمان شد. کلمه پشیمان، به الله جل جلاله گفته ایشان اینه مشودک شدن. چون صفت مخلوق که پشیمان میشه، ایراد بکی دادن. خالق دادن در حالی که الله سبحانه و تعالی از شیمانی و زیگفا چون او میفهمه قبل پیش ازی که مثلا اینمین انسان ها رو من خلق میکنم بازی که خلق میکنم ده قرنباد یا چی میکنم الله میفهمه ضرورت نداره که پشیمان شو اما در کتاب از اونا اینمین نسبت زشت به الله جل جلوه شده یا مثلا مشرکین یهود یهودی ها چی میکردن یهودی ها مثلا ده ده ده, ده صفات از بی ادبی زیاده که اینا بی ادبی کردن چی بود بی ادبیشون که میگفتن که یاد الله مغلوله میفتن اعوذ بالله الله جل جالو که است دستش کوتاه است چی مون کوتاه است مثل که یک نفر می میم تو پسا هستی لکن بسیار دست کوتاه یعنی بخیل هستی اعوذ بالله با الله جل جلاله نسبت چی را میدادن نسبت بخلا می میدادن پس یک انسان موحد یک انسان یک تا پر است آیا نسبت بخل به الله جل جلاله دادا میتونه موضوع یک مسلمان موحد یک تاپرست و قرآن شناس وقتی میگیم که الله جل جلو دارای صفات عالی است ذات با عظمت است آیا ما حق داریم که به الله جل جلاله تو صفات را بتیم نباید این صفات را بتیم اگر این صفات را به الله جل جلو دادیم پس ما با مشرکین یهود و مشرکین نصارا و مشرکین قریش یکسان میشیم از این خاطر هر مسلمان موحد همیشه عادت می داشته باشه که به الله جل جلاله جل چیزی نسبت بده که خود الله جل, جل برای خود نسبت داده از این خاطر ما خداوند توصیف میکنیم به نامهای خداوند و به صفات خداوند مطال به اون اصما و صفاتی که خود الله جل جلوه بر ما بیان کرده پس کی الله جل جلوه را میشناسه هیچ کسی الله را نمیشناسه نسبت به خود الله جل جلوه پس خودش خودم میشناسه او خاطر نامهای خدا برای ما گفتن تیور باد از الله جل جلاله کی زیاد الله جل جلاله نشافت حضرت محمد صلی الله علیه و سلام بر امام محمد صلی الله علیه و سلام بر ما تشریح کرده که اینی نامهای خداوند است پس ما از قرآن و از سنت صفات خداوند جل جلاله رو میگیم اما کسایی که میگین از طریق قلب خود مدل من دل میگه که خداوند رو تو صفات کنم نگو مثلا خداوند خود در قرآن گفته که ستار است علما میگن ساتر نگو یعنی بسیار ساتر بسیار سطر کننده سطر سطر کننده پشاننده پس عدب باید مراعاد بکنی که ذات که سطر است او را باید ساتر نگویی ذات که رحمان است سیغی مبالغه است تو رحم که اسم فاعل است باید نگویی یا رحم نگو یا رحمان بگو چرا؟ به خاطر که الله جل جلاله در قرآن عظیمشان و, و نبی کریم صلی الله علیه و salam بر ما نگفته که راهم گفته الرحمن. فا میدونی یعنی من یک مسلمان عقیده دارم که حضرت محمد صلی الله علیه و اصحاب کرام والبایت و آل پیامبر در صفات خداوند چه قسم داشتن؟ که صفات خداوند مانند صفات مخلوقات نیست. و صفات مخلوق مانند صفات خالق نیست. چرا صفات خالق مخلوق فرق داره. خاطر که صفات خالق صفات اس که باقی میذيبه به خدا خدامندی است. الله جل جلاله و صفات مخلوق صفات عاجزی و بیچاره است. ما مخلوقیم میشیم. ما مخلوق میتونیم صفات بکنیم با صفات های بسیار خراب خراب. مثلا یک نفر است میگه نید دزد است. راست نیست؟ فلان نفر چطور است میگه دزد است. فلان نفر چطور است بخیل است. فلان نفر چطور است مکار است. فلان نفر دغال است. ها؟ نفر چغل است. فلان نفر بی است. فلای نفر بیوجدان است اینی صفت های زشت هم برای انسان نسبت میدین اما صفات انسانی رو با الله جل نسبت جل و نسبت داده نمیتونیم خب این فیتان نظر داره یک نظر گوشی نظر از اینه من بینیم که چی میگن استاد امروز زیادر مردم هم میبینیم کارهای بعد انجام میتن وظیفه ما چیست وظیفه اینه که با او, هدا... او رای نیک برش نشان بده رای نیک برش نشان بده پیشتر گفت که استاد وظیفه شما هدایت کردن نیست نگفتم نه. فرق است بین جملات و اصطلاحات و کلمات ما وظیفه ما هدایت کردن تونست it's not my business را دادن فست بله وظیفه پیغمبر و وظیفه ما مسلمان کلا که چیز اینما علیک البلاغ و علین الحدا الله جل جلو و پیغمبر سمعه وظیفه تو تبلیغ است گفتن است رساندان است وظیفه ما و تو مسلمان وظیفه رساندان حق است سعید ما میم بر خودت چیزی که حق است میگم ما همین پیش اینی برادر برش میگم که برادر عزیز اینی صفات خداوند است اینی ذات خداوند است اینی فلان است اینی که ما گفتید اینالی ای کی که چقدر قبول میکنه قلب ازی تعلق داره با الله جل جلاله با اندازی اخلاق ازی اخلاص اخلاص ازی خداوند برش هدایت میده قرآن کتابی چی است هدایت الف لام م ذلك الكتاب این کتاب است کتاب چیست؟ است کتاب هدایت برای کی لل للمتقین پس اینال اگر تو خدا به کردی از امراض فکری خدا به کردی از بدی ها گفتی الهی ما را هدایت کن خداوند تو را هدایت میکنه من من نیستم یک راهنما عاجز بیچاره برات گفای خدا میگم گف به من را قبول میکنی قبول میکنی احیانا میگی چیز برو سالیج گف قبول ندارم خلاص وظیفه من نیست که من تو هدایت کنم وظیفه من فقط راهنمایی است که تو تبلیغ میکنه برای دیگر به حق هم برسیم بسیاری کساست اینا وقتی که گپ مرا ما بشنوکه بگوییم که برادر الله جل جلو از قران بشناست ضرورت نیست که تو عین ذات و غیر ذات بیا داخل بکنی و جوهر را داخل کنی و عرض را داخل کنی بعضی کسا میگه جوهر چی است میگه جواهر چی است که قائم بذات باشه طول عرض و زحامت داره این جوهر است عرض چی است که عرض که قائم به غیر باشه مثل رنگ و رنگی رنگ سیاس خودش طول عرض و زحامت نداره الان تک چیز بگم معلوم میشه این نمیخزه صفات خداوند داخل میکنه صفات خداوندام بشناسیم پس اینجای واضی که ما بفرماییم خدای خداوند چی شد اگر خداوند جوهرام بگوییم کفر شد اگر ازام بگویند کفر شد به خاطر از اینکه خداوند متعال رو با صفات مخلوق باید صفت نکنیم اما وظیفه ما هدایت کردن است وظیفه ما فقط رساندن است اینکه کس میخواد هدایت شود به خداوند گپای ما را قبول میکنه به خداوند عذر نیاز میکنه هدایت میشه پس سری کس اس نمیشه بنان موضوع نیست مسلمان وظیفه ما چی است رساندن است هدایت کار است الله جل از عزیزی خاطر ما ادبن با خداوند خدا متعال جل جلاله که من هدایت می یا تو باید هدایت بگی من چیکار هستم که هدایت کنم ترا من چیکار هستم یک آدم انسان بیچاره و عاجز یک روزاست هستم برای دلایل خدا میگم قبول کردی کردی نکردی دلت قبول کردی خانه تابات که نکردی خانت پنجو ادبات یه سری می پرسان میگم اگر ما مثلا ما می خوایم یک مشکی که با قرآن و با حدیث و هیچ چیز عقیده نداری می خوایم به اسلام دعوت بکنیم ما و شما به خاطر فاماندن یک نفر دلایل حسی هم داریم دلایل عقلی هم داریم تا جایی که حس ما کار میکنه از دلایل حسی کار میگیریم صحیح نی؟ برات نشون میدم برادری زمینی و آسمانی فلانی فلانی فلانی, فلانی، یا را میبینی و چشمت؟ میگه بله آیدی تصادف است علمای اسلام هم از دلایل عقلی کار گرفتن مثلا یک نفر در زمان امام اعظم ابو حنیفه این نفر میگفت که چند نفر یک جا شده بودم که بیا امام ما کت استدلال میکنیم گفته اینه که وقتی ما از الفلسفه گپ میزنیم که ما استدلال عقلی نکنیم از حس کار نگیریم لاکن برای شناخت صفات خداوند گفتیم فلسفه رو داخل نمیکنیم. کنیم امام اعظم اومد براش یا گفتن که ما این صفات تو را اینو قبول نمیکنیم. کنیم گفت چرا قبول نمی کنید گفت میگیم که اینم دنیا که است این کُلش تصادفی پیدا شده گفت تصادفی پیدا شد، صحیح است سواب یک تا مناظره می کنیم سواب شد یک چند قنا وقت اومد نیم ساعت وقت اومد پرسیدن که تو امام مسلمان هستی چرا قنا وقت اومدی چند نفر تصای انسان که میگن که کل دنیا را تصادفی پیدا شدن ایمان برجور که والله بابخشید من در راه میامادم من از دریا میخواستم تیر شدم تیر شوم یک درخت سر کرد و سر زد و بالاخره کلون شده و بالاخره توتا توتا شد بالاخره از یک کشتی جور شد باز من کشتی سوار شدم تا که همین جور شد و آمدم کی جورش کرد سر و اما من کل جور شد باز من در بالا شدم باز من را تیر کردی طرف باز من آمد یا بر گفتن خب تو اینقدر ادم عجب بی هستی یک کشتی میتونه به کسی که ایده عرق کنه تیشک بوده باشد نجار باشد کشتی ساز باشد کل هزیر بسازد تو چطور میتونی ای کار این کار کی کدام میتونه؟ گفت خیشمان چطور خود وشیار میگیرین وقتی که یک کشی نمیتونه تصادفی جور شدن این کل دنیا تصادفی پیدا شدن؟ آهو دمیگه گپ اول خود گلم کل هزیرن؟ جمع کرد مثلا عبد المجید زندانی میگه مکت یک که با با چیز عقیده داشتم که هیچ کس هم تو دنیا تصادفی پیدا شده. میگم من بهش گفتم که what do you think about your shoes? about your shoes? گفت this is made in china. آ، oh, made in china؟ گفت میشه تصادفی باشه؟ گف نه نه نه، در چین ساخته شده. میگم من بهش گفتم خب تو میدن کجا هستی؟ خودت؟ گفت من تصادفی هستم گفت تو از بوت تام که ازیف‌تر است که بوت بدون میدن بنویس که کس بود تا بسازد، پیدا نمیشه. اما تو با این چشمایی، این زرافات، این چهره خوب، این دندان‌ها، این ساختمان، یا یعنی نه تصادفی دندان‌ها می‌دهم دانه چکشده، این چشمایی ناکشیده است. هاگ تصادفی می‌بیاره کشش مدرم داده دانه، گوشید می‌می‌دانیم که خوب تصادف است دی خب دیگه. این حال ما در مسائل دلایل اقلي از اقل استفاده می‌کنیم. دلایل ما گفتیم که انسان ما دلایلی حسی داریم، دلایل اقلي داریم و باز وحی است. اینال ما از دیمت حس استفاده میکنیم برای فاهمیدن حقیقتا وقتی که سعدی میگه برگ در اختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است معرفت کردگار خداوند متعال جل جلو میگه که چرا از عقلتان کار نمیگیرین چرا از کار نمیگیرین چرا از حستان کار نمیگیرین چرا از شدا بر نمیکنید چرا تو فکر نمیکنید اینا ما ازش استفاده میکنیم اما گفمت چی است وقتی که تو صفات الله جل جلاله جل رو میخوای بر مردن تشریک کنی این نفر گفت بله الله وجود داره سپس تو این مشرک کن که نه دنیا رو خالق پیدا کرده میگه خب نقطه دومش کل دنیا ما طورا کلش الله بله برای الله جل جلو پیدا جل جل کرده پسی الله جل جلو جل بوکه مثل که یک کامپیوتر ساز وقتی کامپیوتر روان میکنه امره کامپیوتر یک اطلاق روان میکنه بنا ان زمین و آسمان کل چیز به با عقل این فامیدم که یه خالق داره. امی خالقش کدام که کتلاق روان کرده بله. قرآن از این است. پس ما خود خالقش چه خصم بفهمیم، چه قسم بشناسیم، بیاید قرآن بشناس. اما تو اگه فلسفه بیاید که خالق نرمانت است، فایلسوف است، فلانیس، فلانیس، اینجور صفات دیگه‌ای که بیتی باز برای دو هزار سوال دیگه پیدا میشه که بازو کنات نمیکنه. پس در شناخت خداوند، وارساندن به توحید، از آخرین استفاده میکنیم، از هیچ استفاده میکنیم. در صفات خداوند، از چی استفاده کنیم؟ از قرآن عظیم شأن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم درو سوره میتنه که ما یک مسلمان موحد باشیم مشرکین چه یادت داشتن مشرکین یادت داشتن که صفاتی که دل خودشان میشه صفات مخلوق به خالق نسبت میدادن پشیمانی رو به خدا نسبت میده آیا الله جل پشیمان میشن اون یهود میگه در کتاب توم مسیحاست پاپ جان پاول میگه پاپ بندیکت میگه ما میخوام خدا به اسرائیل پیدا کرد وقتی که پیدا کرد باز پشیمان شد اون میگه بس انی گپک ایپاپ میزنه شرک است نیست شر در چی است خب انالو ما شما توحید و شرک در ذات و صفات خوندیم دو سوال میکنم که بفهمم که شما این درس خوبی خوب یاد گرفتین یانه دو دو سوال اگر کس بگه که انشتین بچه خداست این مشک در صفات شد یا در ذات در ذات شد اگر بوه که انشتین علم انشتاین مثل علم خداوند است مشترک در چی شد؟ در صفات, در صفات شد اگه کسی بگوید که الله جل جلوه مثل انشتاین است هم در صفات میشن؟ هم در ذات میشن می می پس ما بگم مثل در چی است؟ اگه گفت که مثلا شریک خداوند است یا ساختمانش اگه کسی بگوید که چهره انشتاین مثل چهره خداوند است در صفات خداوند چه شد؟ شخص ما امینیم